نه سه چهلو یک آمد حمد از تو فیر می کنم درد هر همزه اول از همزه هر همزه هر حالا برای چه معانی می هر دو لند ادای مدید و متوست می آمد دران اداه قریب از ایدو وقتوست و لند ادای اکثراً قبول نداره اکثراً میگن همزه برای نداره قریبه یک حرفیه برای نداره ولی حضرته عیل و یا که متوفرها استعمال میشه برای نداره متوفرسته بعض اصلاً نداره متوفرسته تو قبول نداره میگه این چیز یا به ما نزدیکه یا تیوره، یک متوفرسته بیمعناست اگر نزدیکه با عمزه و های اگر دوره باقی این ها ولی ها همزه به عنوان نداره نکوسته قول بسیار است مشخص ول مزاره هم. همزه برای مزاره هم نید یه یعنی نشید اینه حضب بود برای مزاره برای مزاره هم این که هایی نگاه کنید درشتر زیرد ندای آشیرد بودی یعنی وارد میشه برای ندای متوسط بگه وخازا دمیگر برگی احلی یعنی چی؟ یعنی اینی که معظوم شهر خوده احلی بهش قائم نشده چونکه احلی قائم نشده من من دو زمن نمیان قرده باشم بلا ممکنه یه مهمور قول زدیگی دیگه و این هم ها خوبه این دخون به ندایه قلیه این فقط برای ندایه قلیه خود این دیگه بله یه نفر نفره برای ندایه برای ندایه در سفر پس برای نماره هم میاد مثل قلیه دوسته عزم کن برای تصویه هم اون همزه اون است هم قبل از همه محتسله میاد و ما بعدش در تعدیل جمعه است مثل سوا و نه ان چی میشه؟ سباقون علیه من جده هم سباقون قبرم آمدن علیه متعظمه در سباق یعنی مستوید علیه انذر قبرم سلامه تحبیل به مستر میریم می که امزارو کرد و عدم رو امزاره امزارو کنیم چونه قبره؟ محطم محطم محطم امزاره تمزیه تصویه یه حد داخل از علا جملت این محل مستده. اون همزهی که داخل سبب جمله که در محلش نشسته مستده. و بعدش هم چی اومده؟ همه نه و سوا و نه علیه هم همزرزه هم هم هم لا یکنه یکه نصابیست بر ایشان ان کار کنی شان بدی می نشوندی یا بیم یابیم ندی برای ما مساوی می نشوندی ندی مسابقی یعنی چی یعنی که ایمان دارند مساوی است لایو نه آه اکید ما نگاه یعنی اینها از این جهت کارشون پازندی می کنند از بینیم از بینیم از بینیم از بینیم پس همزه یه تصدیر همزه داخل میشه و جمله که در محل مستره و بعدش همچه میاد همه نسته پاند ولی نسته پاند همزه معنایی برای نسته میاد. برای نسته پاند سید نبوبه ها از تصبر و تصدیر تصبر یعنی مقدار تصدیر یعنی نسبت جنبه عنده هر وقت که پیش میش میره نازو این یعنی یه موقع هست ما از مجرد سوال نمی یه موقع هست از چی سوال می کنیم هر جمله و نسبت سوال می هر برای یکیش چیز استفاده همه استفهام ها یه نقشی هست یعنی یا برای تصور استفاده حالا نیست اما حمزه هم برای تصور استفاده هم برای باید لغوه ها از تصفر بعد میشه با اون تصفر و بر... نه از ایدون فتاره هم از ایدون فتاره هم. هم همزه زیجون هم همه است. هست هم دو جانبه یکی بعد از همزه یکی بعد از همزه استفام هم. هم همدون هم الان اینجا از نسبت یعنی در خانه بودن کسی از این سوال نمیشه این درصد پیشه بیان سوال یعنی 100% درصد اون یه نفر در خانه هست ولی نمیدونه که اون یه نفر زیده است یعنی مدرم. یا لذا در جواب این فعال آدم نمیتونه بگه نعم یا نعم. نا... چی؟ نعم معنا نعم و یا در جواب تصور بفر نمیشه بلکه چی باید نمیشه؟ یا میگه زیدون یا میگه هم دون یا میگه زیدون فردا یا میگه هم فردا بفرداد باید همین حسن مور از محطت چی بود؟ محطت یه موقع ممکنه موقع خبر باشه مثل افدار زیدون افستود این هم تصور کار اونجا از خبر خواهر می کنیم افدار زیدون افستود می دونه زید یه جا که یعنی یه جا بودن زید شکری بکید نداره در مضمون اجمالی جمله بیشت شکری پس تصدیل داره اصناد داره دو این جملم با اصناد جمعی نمیدونه که مصندش فرداره یا به داره از شما فعال داره که مصند من فرداره هست یا مصند جمعی من فرسوق هست شما جواب نید فردار یا میگید چی؟ فرسوق اینجای را که قول معروف محتدا باشه ممکنه از مخبوض از زهی دن زربتر ام امراش از زهی دن زربتر ام امراش یعنی چی؟ یعنی آیا زهی رو زدی یا امرو زدی؟ این تو کسی رو زدی این امری مختول مختول سد زد. تر سد پس نسبت کاملا معلومه اما نیچه اونی که اون که که تشفرده یا امره برای ما معلوم روزا میپسه از زیدن سردت هم شما باید در جواب بگید زیدن یا میگید یا با با ممکنه از حال کار، کنید از حال چید اما شیان جئت هم را کبار اما یعنی چید یعنی آیا سواره اومدی یا یاده اومدنه صد در صده. از تصدیق هست اما این که میادت ماشی بوده یا هی راکب بوده، امید که داره ازش قاطع نکنه. چون یه نشستن میگیم، اونی که قرار تو هم زیه اونی که قرار ازش تو بشه یعنی تعیین بشه تو هم زیه اونی که قرار ازش سوال میشه و تنینش کنیم یکیش بعد از هم. هم. هم هم محادل. همزه واقعه میشه یکیش بعد از همزه یکیش بعد از همزه این دلیمه هم دیگه همه معادر اینه معادره همزه است مشفظ شد پس یکیش بعد از چی بابشون؟ همزه یکیش بعد از هم ببینیدید فتگاه داره از فتگاه سوال میشه از این اونجا ز یا از این دو تا مثال ارضوام چیه؟ مودس حسب هم مثال برای تصدیق نذاده مثال تصویر را بده سوال می‌کنی از این دو مثال اون امها رو بردین میشه مثال چی؟ ام به بعد و بعد دنی. معادل نداشته باشه میشه مثال دست از ایون قد داد یعنی چی از ای قد داد یعنی ها یا سهی تو خونه جواب دید اصلا عصبشو نمیدونه نسبت رو نمیدونه تو جواب بردید اینجا به چی؟ نعم یا یعنی این وقتی با نعم یا لا تسکیده میگه از ایدون فتار؟ نعم از ایدون فتار؟ چون؟ میگه به خلاف حل به خلاف حل اقتصاص ها به تسکید کچی افترساس براد بیر از بیرانی سا بود دار خود خود پیمسا در از بایی آن در با چیم؟ فت همزه یعنی فت در همزه و دقیق بطن. یعنی و دقیق لنونه دقیق برای نزه است. ان نر اینها نیسته تر دو اسمی یکم به حدیب ان دو جود یکی ان اسمی یکی انه دل حالا حرفی ایش مشفه است مثلا نزدی در در برم هنه بسیدنی گرسید ها هنه مقفه بس بسیدن هنه اسمیگرش بود ها هنه که اسمیگرش کنو برا بزن هنه دوار بزن برای اسمیگرش کنو از این اون زمین رو بگیم زمین مفادر انتا انتما انتما ماست. انتما از این هاست بگه اون و اون په و تما و ته حرفیه که بیان کننده مفادر موسیقی شد داره بیانه بگه مثل چی که انتا و انتما بگیم چرا بگه از ما بعدها هر خود خطاب اتفاقاً زیرا ما بعدش حرف اتفاق است. ارتفاقا ارتفاقا یعنی چیم؟ یعنی حرف اتفاق بردیه حرفی که هستن میشیم که ان زمیر است و تا و تا و تا و تا ها چی هست حرف اتفاق هست که مقاطب رو به شون میدن پس ان یعنی شما حالا این شما یعنی یه نفر مزنگ یه نفر موهندت دو نفر مزرکت دو نفر موهندت جهنه مزرکت جهنه موهندت معلومی نیست فرده کنید انده یعنی شما آقا شماش از انده هم شد آقاش از اون انده یعنی شما دو آقا این خود انفر یعنی شما آقا. شماش از انفر میده شد آقاش از اون من... انفر انفر یعنی شما دوتا آقا دو انفر یعنی شما ستا آقا دونه گرفتی تو شد یا یعنی نه این مطلبی که باز مرگو بشه اینجا فرموده از ما و بعدها هر خود هر خود تقابه از تقابه مطلب رسیار ناسهی چه خصه این این همه نهات اتفاق داشته باشند که این اند زمیر از و اتماع حرف خطابند این اتفاقی نیست بلکه از اون موارد اختلافی اختلافیه هست بعد این ها قاهلا و یعنی عکس اونی که این میگه حرف خطابه اونها میگن اون چیه؟ زمیر اوناست بعد میگن خب بچه را همه بعد قبلشه میگن همه اماده یعنی ستومی چون نمیشده تنهایی به تا و تا و اینها تلفظ بشه مجبور شده بیان هم قبلش بذاریم که کلمه قابله تلفز بشه اینه مول قبیلی درسته؟ و چی شد؟ که هم حرف است حرف اماد تا و تا ما او تا زنی را هستند و فردم و اومدن واسه خاطر این که بتونه ستونی داشته باشه حرابشه بهش طلاق بسید اینم دو بود قول دیگر داره که اصلا این حرف چی چیه که نصفش زمیر نصفش حرف خطابه یا نصفش حرف اماده بو هم چیه؟ زمیره و یک کلمه هم من دو دو کلمه اه. اینم قول دیگره اصبا اقلی این که ایشون فرمیده زیرا این اون از تعدییه است زیرا ماورن ما بعد ابن آن حالت خطاب است اتباغا این اتباغا اتباغا درست وجه حشو حالا هر دیگه اشونه میگه بعد هر دیگه چون هر دو با هم ضمن مضارع حذیگش شده در حالی که نصب مینه به له اون مدارم هست هم تصویمون خیلان نه هم تصویمون تصویمون نبوده باید من هر تو در دو ناسه بزنده و مخففتن بینم مصقل هسته و مخففت مصقل هسته باقیم یعنی هم نبوده یه نونه چه شده آن. و همه از موسفقله از نظر عمل کردن چطوره؟ واجب که ها؟ واجب که عمل کنه اسمش چی میشه؟ زمیر شن قربش هم ماده یقین بیاد همین کنه سلطر بعد اون ماده یقین بیاد بین همه مقفل از موسفقله و فعله بعدش چی فاصله میکنه؟ سین و سوکا مقفل و یا مثل علمان سی اکون رو نمی کن مرزا علمان فیل قلبی انعن مخفف از مستقله زمیرشن اسمش سی اکون رو نمی مرزا البته این در جاییه که اون بعد از هم فیل متصرف باشه اگه فیل غیر متصرف باشه مثل اندهی سلن انسان نامازه ها بودی. دیگه نیازه بسین و قدره صبحانه ها الهی سلید انسان الله, سلی الله هم و همه مخفصره همه مخفصره همچیه داریم و ناده اینا ها انیه های چی بود؟ اینجه بدش؟ معنای باشه اما ماده ای غور ناده اینا ناده اینا ها رو داره اما لفظ غاره وجود و مفسره مو فقطه خوب این عن مفسره میدونید که تفسیر مفرد رو به این نمونه مفرد یعنی روی جمله غیر جمله رو تفسیر نمیکنه بلکه تفسیر چی رو میکنه تفسیر جمله بعد بلکه رافع ای, ای, ای, ای تفسیر مفرد هم مثل که من میگم از جدون شما میگن از جد چیه؟ ای میگم ای زهر باید این طبق حالا این طبقه میگم این زهر این تفسیر مختلف و شرطه ها از توسط بین بینه ای آنه با خودش این چرط میگو به این ها میگوید مختلف تفسیر شرط هر مبصره اینه که بشه بینه بس تفسیر چی رو تفسیر مورد اول ما به معنای گور و با به اولیش هم به معنای گوری باشید اما خود لفظ صحیح گور نباشید شرط بعدی و قدم دخول جار به محلی ها حرف جدری بر سر بین اندر نیمه حرف جر بر سرش در نگر اگر حرف جر بر سرش در بیاد دیگه اَن اَنه مستدر اَن یه تو تعدیل به حرف جر بر سر حرف در نه. اگر این اَنه ان تفسیریه باشه حرف حرف بر سرش حرف جر در نه. وقتی حرف جر در من معلوم میشه که این اَن اَنه بگید. هنه مستریه هست که تعویل به مستر بیره میشه از و می کنه هنه حرفه چی می کنه حرفه جب و سرش و اوحینا الهیه ان اصنا الکر و اوحینا الهیه یعنی چی؟ یعنی ما وقت کردیم به توی نو خودی در معنی هست او عین اولاد ان اسنئل فور یکچ کوکن کشته خب این ان ان مفسر است. بین دو تا جمله واقعه شده. اولیش هم در معنای قوله و حرف جری هم بر سر اندر نیامده. و جمله ان اسنئل فور محل اعرابی هم نداره. جمله که از محل اعرابی نداشت جمله چی بود؟ مفصل. برای چون قوه هی ان اسنه ایل فول. حالا اگر اینجا بود به ان اسنه ایل فون به ان اسنه ایل فون به مستر میشه به سون ایل فون جا رو مشروع متعلقه با اوپنی هم دیگه ان ان مفسره بگید نه چرا چون ان مفسره حرف است و هیچ از حرف جن بسر حرف در و عدم دخول جا عليه. عدن این هم و دیگری زایدن عدن ناسبتن مخبفتن مفسرتن و جاهلتن چهارون این هن چیه؟ هنه؟ چون زاید گرهتون بعد از لما مثلا چی میشه؟ زایده میشه لما ان جاال لما انجا از رسول انا رو تن سی علهم قرآن دیازه لما ان ان بعد از لما چیه؟ و زایره و تقه و غالباً بعد لما غالباً بعد از چی بارون میشه؟ بعد از لما مثل همین لما انجا از رسول انا رو سوی بود زاره و سوی بود یا نما سوی یوزه یه مزای جنبه شیر اومد تو ازاقی بوده یه حول و چشمانش و بین قسم و لو یکی از بین قسم میاد و چی؟ لو مشخص شد؟ بین قسم با این دو هاشید. دو تا شعر ان لو ارتقینا و لكان لکان لنا یومون بنشربه من دیگه اما بلا لو كنت و ما به هره اندر ولن عزمی. ها یک کنی این دوتا رو به قول معروف فعنام دارم میگه اون قسمش مذبور باشه چیشون بوده؟ دو بکنه واسه اینه گفت بین قسم میاد اولو دوی یا واقع قسمش مذبوره مثل اخسمو بوده اخسمو به لا ان لوه دقیقه الان ان انه چیه؟ سایده هسته بین اخسمو و ان بین اخسمو و لو ان چی شده؟ داره. لو ارتقه ما ها و هم کن لکه ها مدن آیومون به این جواب هست یا مدروک یا قسمش چی باشه محضور باشه. باشه. باشه مثل این اما بنداه بنداه جای چی نشسته خبصم والله بیره قسمش محضور والله اندوکن تا خود را چی؟ پس هم و اقسونه من همه سایده لوگون دا ورون و ما به گرزه در فرد مشخصه؟ این لوکن دا ورون تا آخر فیل شد جزای شد رو هم دیگه جوابه قسم جو شد پس بنابراید بین قسم و لوگ حالا موخواد فیل قسم بزرگ شده ماشه موخواد ذکر بگیر دیگری ال ن بر کسر یعنی چی بر کسر باشد نیم و تخفیفه بر کسر باشد هر دم شرطی بیادن میاد در حالی که شرطی است و نا بیادن و نا بیادن شرطی میاد نا بیادن یعنی دیگر در این صورت است مصحح یکی دیگه هم داره اینه سایی باشق هسته اینی که بعد از مای مشبهت و پیده ایزم می آمد چون به همهدشو می گرم اینه چی بود؟ دو, دو. دو. شرطی و نافیه در نه بود اینه کافرونه اینه ری که بروه اینه روه نه اینه شرطیه که نیز اینه شرطیه واسه واسه چی در بیان واسه وین در بیان واسه در بیان. و الله هم اومده استثنان مفرده استثنان مفرده در کلام منظی بازه میشه پس این اینل چیه؟ نو no. نو no. نو yes. اینل کافرون اما اینل مشبرتون برکس از فیکه اینو و مستولین علا احده نمیده تو رس و مستولین علا احده اللا علا از افر مجامید کدار ادایی خب اینو دور کتابه افرانه دید اگر یه موقع پس این استثنان مفرد باشیم شد چی؟ این خوبه اللا مسترون دیگه عمل این کافرون یعنی لیس الکافرون مل کافرون نیستن کافرین اللا بی برونه مگر در زیان و خرید هم دونی می کارن دونی این علوا القاف بدون مخاطب بي غروره چيه خبرشه استثناء استثناءش چيه استثناء چيه خاصه معمولا دلایس القافمون الاغ من القافون الاغ ني اينو مثال بزن چون معلومه آه. هزاران هزار شرط مثل ان او تو به ازاران ازار مثالشو کنید این این لم تفعه فما و لب این و لب مثاله من مخفظت هم که در مسخل اگه مخفظت اگه در داره عمل کنه اعتمال داره عمل نکنه اگر عمل کنه دیگه نیازه به لام بارغه نیست اگر بیاد هم بهش میگرد لام چی چی نیست بهش چون خود عملش نشون میده که این نه نه به مناهی اینه هست چون نصب میده و ولی اگر عمل نکرد به سر خبرش چی در میاد لام در میاد و این لامش بگه لامه باشه. یا نام خودماری نمازم یه همه نجد و این قلدن لما جمعی اون دده اینا محضرون بیقراعت تخصیم بیگه اینو اینم قلدن اونی که این مخففه بوده این قلدن اون شاهد مثال الان اگر این دون قلدیم دو جوری نخوندن این کلان این کلان مثل همون این کلان لما لوا بیان نمون رب یعنی اعمال همون یعنی توی کتابه حوامل ترکیب کردن تو همین سمنی می ترکیب دارم به در جایی هم همین کلان حالا اگر این باشه این کلان این با قفاف است عمل هم نگه چی؟ محترم. لما جمیعون لده اینا موزرون آم میشه لامه چی؟ لامه قارقه میشه خبر موزرون لده اینا لده اینا صفت اینها همه آذر در نظر آذر دیمه اما اگر اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم این کلند اون موقع میشه چی؟ این کرده؟ کلند میشه چی؟ اسمش اسمش لام میشه لامه؟ مزخنفه ما چی؟ زاییم نسیم اون خبر تده این ها مزخنفه هم در کسی که اینو مخففه یعنی هم این رو مقفل بخونده هم نما رو آهاره. اون بعضی رو اون هم باستاینند یعنی که و تفقید نما. نما حالا هست و ما هر کجای ان و ما رو کنار هم جمع بشه یا بشه ان ما یا بشه فن متأخر رو بن انام او ضایعه اونی که متأخر میشه میشه چی زاهده. اونی که متأخره چیه ضایعه بعد ان و ما اگر بیان یعنی اولی این باشه دوبامی چی باشه؟ آه ما باشه این N-N این این چیه؟ و فیل مزاره بعدش هم 95% و پیشتر معاکل به نوعی در بیره مثل ما ترعیه نمیده بشاره هدار 200 نمیده اما نمیدن زیاده. این اما نه چی ام ما ترين منه نل بشر احدات مرغم زياده يعني ام ما ترين ن چه مده ان طر ين واك چه بعد به مصادر مؤكد بگیر نمیشه بعد فعل شرط باشه شدن مگر چی موقعی که ما با ان یعنی ام ما ام ما m با طبقان یعنی m با تا n تا n تا بن ما اومده شده m با وای اون تاف هم رو درگیر اومده شده ببین پس اگر انو ما بود n جدول بود ما است اما ان چیه شامل و مثلا مساله بعدش هم مؤکل به اما اگر ما این بود ماه بود کاش ماه نافی هست و انش انه زاید و اگه بعدش هم جمعه اسمیه بیاد مفتدان خبر ماه که عمل نمی کنم جور عملش چیه چون شباحتش به لیسه کم میشه دیگه لعیته بعدش انه زایده نمی کن. این چون بعدش انه زایده اومده شباحتش به لیسه چیه از حجمه کم ماه انتون زهبون الان اگه این نبود بگو چی؟ ما انتون زهبن حالا وقتی این نوعه وقت بگیم ما این انتون زهبن و متا اجتماع این و ما فرمتحکره کنید کما زاهره کنید که متحکره چیه زاهره است. حالا رسیدیم به انتون انده دریمت میبه تشدید یعنی با بطر همزه و تشدید دونه هر دو تحکید هر دو تحکید هزونو پشت باید رو درمه چیه حقق حقققه این کردم تحکیدش کردم من تحکید کرد هر دو تحکید خب این انده فرقش با نه چی بود انه تعبیل به مستر میمود اما انه به مستر انه جمعه به اما گفت چی؟ و تو اولو تو اولو. با, با و تو اولو به و تعبیل برده میشه این علب با معمول بینش معمول بینش برونه نسو خبر میشه تحبیل به چی بار میشه؟ مستر مستر که من لفظ خبرها مستر که از لفظ خبرش آورده میشه البته کار مشتقه اگر این خبر چی باشه؟ مشتقه باشه نیست بله همین ان نزیدن قائمون یا یقوم و یا جای قاهمی یا مزروب یا حالا در صورت که قائم یا یقومو باشه میشه چی در بیدش؟ قیام قیام و چی گفتم بله منی هدن زیده هم میشه قیامو؟ و زید در صورت بعدی میشه چی؟ مزروبا نگرد باشه؟ ضرب و زیده زی جنس آن خبر مستر بیاوند اضافه کن سوی اسفرش سراسر سر. از جنس خبرش مستر بیمید اضافه کن سوی اسفرش. حالا اگه فتردار باشه فتردار متعدده به چی بود؟ استبره یا مستبر بود. پس چی استقرار آه؟ چه بلغنی استقرار و زیده بدا. استقرار رو بیار اضافه کن استقرار و زیده بدا. این ما رو مشتق که با تحبیلاتش ما خدمت شما و به کهونه یعنی از مستر کمکی کهونه استفاده می‌کنیم. امکان جامع اگر چی باشه جامع باشه اگر جامد باشه اول مثلا بلغنیم ان ناجزری دو بلغنیم ان نکر چی, چی؟ زید بماده سینه که تو چیستی هستی زید هستی حالا این اگر خاصی تعلیم دهند مصدر بگیریم چی, چی اینجا بعد مصدر کوم رو بیاریم اضافه کنیم به اسمش خبرش رو منظور به عنوان خبر کومز از مستر کوند رو اضافه میکنی به چی؟ درست نه اندر بعد خبر اندر رو به عنوان خبری این کوند قارش میکنی. منصوب ذکر میکنی میشه چی؟ بلقنی؟ کوند رو کرد ذکر کوند رو کرد مرحوم رضی اینجا میشه همون قانون رو پیاده کرد کنید. این قانونی که مرموش اختیار مرموه من از ترابادی میگه که میشه اینجا هم همون قانون رو بیاره کرد سه جنس خبر مستر میارد اضافه تو توی اسمیک یه میگه هم مستر دارد مستر جعلی مستر جعلی یا مشدده یک ها به چسبوید مستر دارد از انسان شما مستر دارید انسان دودن رو چی میگی؟ امسانیت از آدم مستدر دارید آدمیت آدمیت امی چی؟ آدم بودن از چی داریمون داره مستره بودن از حجر داریم سنگ هجریت یعنی چی سنگ بودن ام حالا از زید دارید میشه چی؟ زیدیت خب از اون موقع زیدیت میشه مستر زیدی یا اول اضافه تو پیویس روستر بزاریمون شد چی؟ زیدی یا برموش. این چیزیه که ایشون داره نه با بلغنی یعنی اندکه منطلقون یه دونه مثال برمشترزاته که انطلاقه بلغنی انده هازا زیدون میشه چیمی؟ بلغنی پونه هازا زیدون پونه هازا زیدون حالا این نه به موکزه و تشرید به کزه همزه و تشرید نون ن از دونه ها هم اسم و هم خبر رو هر دو رو چه میگن؟ نه این قرآن ها هم از بازپرثی آن ولی در نت از عربایی اینطور استقبال شده که نه هم تونسته است میشه نسبت هم خبرشون پس این نه از روستاشتی و حرف بدان تن اسم و ترف آن خبره و نسبو ما چی, چی؟ این هم این نه. قدیقی میدونید برسر فعل ماضی به معنی چیه؟ تحقیق برسر فعل مضاره تقلیق غالباً ازوری ها ولی ها تو لمت و ازوننی و قد تعلموننی رسول الله تو دید قدش چیه؟ برسر قد یعلمون لا بلدینه قد یعلمون لا بیانی چیه؟ قد علمون تحقیق میگه قد خونصف و زمیر من اون قدر رو فکر کردم که قدر مقدر هست دونبوله همونه و قد خونصف و قد تنسف و زمیر و شعن مقدره و, و, و, و, و, و گاهی اوقات هستش که امنه نصد میده به زمیر شعن مقدر امنه نصد میده به زمیر شعن مقدر خب وقتی زمیر شعن مقدر شد اسمش جمله بایدش باید بشه چی؟ خب چون مرجع زمیر شعن چیه؟ جمله. بل جمله تو خبروها جمله میشه چی؟ خبرش او کجا؟ جایی که ان نه خوب یاد بگیرید جایی که ان نه بعدش منش رو اومده داشتیم مثلا بگیرید اه نه من اِنَّمَنْ من خُلِلِ كَنِيسَتَ يَوْمَنْ اِنَّمَنْ يَدْ خُلِلِ كَنِيسَتَ يَوْمَنْ يَلْقَ <تصفيق> يَلْقَ اون برشه يَلْقَ بِيها بِيها جَآه زِرَن جیم و یا آی با جعا زر و زا جعا زرن و زبا هن و زا زا, زا, زا و الان <تصفيق> کنید این من این من من است به دلیل اینکه یکبول و یلقه خیلی شرط و جازاشت شدن چی؟ مجزون این من، یاد قلل کلیم زدا کنده کلیم زدا معبد مسیح میگه این انما به درستی که کسی که یاد قلل کلیم زدا یومد داخل بشه در کلیسای روزی داخل بشه به این معبد مسیحی در روزی انما یاد قلل کلیم زدا یعنی این کلیم زدا رو یومد یعنی کسی وارد این که دیستا بشه در روزی چی میشه؟ یعنی وقتی ها برخورت میکنن جواب شنگیز دی ها در دین کنیسه برخورت میکنه با چی؟ جعاب زدن و زباب جعاب گواب وحشیست زباب آهی جمع هراز اون جمعه که یعنی بچه که ها به بخشی اونم جمع زد یه یکی آمود میگه تو با این دو سن برخورد مکنه منظوری چیه؟ منظور جنال ریبا که تشکیه می کنم در این زندگاهی چشم تو عربی به این دو دار جعوزور و زد درست میگه از این کسی که با این دور جماعت برخور میکنه این جواب رو با اصداره از زنان بیواششون خب الان اینجا نگاه کنید اینه زمینشن اسمشه من اسمشی اگه گفتی چرا دلیل اینکه اگه من شرطیه اسمش باشه من صدارت بره اینه صدارتش از به میبنه اینجا مجبورن نمیدیم بگن این نمنیت خلرکنیزه مثل این زیاده بگن چی؟ بگن زمیرشن ازدوشه منیت خلرکنیزه از یا من یلغتی ها جهاز ها درن و زبا آ این جمعه فعل شرط و جزای شرط اینا رو هم دیگه میشه چی؟ بگی خبه جدا میگه فقط هم سه و زمیر از اوقات هست مجبوریم بگیم زمیر شهن رو درست ده شان شهن مقدر رو جمعه برچیه تمرشه چون رایی گه نده یه شه حدیثی رو مثال میزنه این موردی که من گفتم یه کامل کامل پاییز میگه مثل قول بیغمبر اکرام که قولی سلالله آهالی و حالی و سلام این نمنعشت ناف عذابن یا اومد قیامته علم و تنبرون این حدیث دو جور روایت شده هر مسافرین المسافرون اگه از مسافرین باشه که شاهد مثالش نیست چرا چه هر مسافرین وقتی اول میشه اسمنا من عشد الناس چی چی خبر انت اما چیه ولی اگه ان عمل نکنه جوش المسافرون خب نمیشه بگیم که اینا اسمش رو رفت بده که نزبوریم بگیم چی؟ اه نه زمیر شهر من اشت نا خبر مقدم از مصفرون مختلف محقر این جمله خبر این نه که زمیر چی بود؟ اسمشه پس اینجا چی چیزی ما رو بازر شده این که بگیم اه نه زمیر شهر اسمشه؟ ها؟ این چی؟ این که از مصفرون به رفت خیار شده اگه به نزد رفت شده میتیم نفت از این که قبولایت کردن که ما روید وقت تذبیر نمیدشن رو نداشت. بلد یعنی هم از شدید ترین مردم عذابا تمیزن از جهد عذاب اونم در روز قیامت چی هست؟ اونایی که تذبیر می کشن بود سازانی و حرف جواب جوابید یکی اینه هست که تو اینه حاضانه و ساهران ما کردیم؟ نردش کردیم که یه قولی بود که نم و عدل در مبرده اون انزال که تعالی مبرد از این امنه به معنی جهن نهم حساب کرده قوله خدای تعالی رو امنه هازانه لساهران گفته امنه به معنی نهم هازان مفتدار لساهرانه بوده لحومان ساهرانه همان افتده لان گفته سر ساهران جمله لحومان ساهران خبر آن میگه و رد و هر آقای رد و حرف آقای مبلغت رد شده حرفش پذیرفته نشده چرا حرفش رد شده؟ به امتناه اندام بیخبر محتده به اینکه گفتن اگر شما بگید این نه این هم باز محتیه که معروب شیخ تقریبا با یعنی نباید این رو می نوشه. چون این رد شدن از تو میگه ردن دیگران رد کردن چون اشکال گفت رو گفته؟ این اشکاله کرده که شما بگید اینه به معنای نعمه حاضانه میشه چی؟ مفتدا وقتی که سخت آهرانه چیه؟ خبره اون موقع لام افتداییت بسره چی در اومده؟ خبره در غلطه جوابی که ما چی گفتیم؟ خودیم است افتداییت بسره؟ مفتدا در اومده بیگه بعد مفتدا هست شده لامه بسره؟ خبر نه بسره خبر اصلا مان خبر نیست مان م میگه فردا به امتحانات خبره مثلا مثلا آهارا. آهارا. جلسه, جلسه مثلا ای. دوم.